افسونه افسانه به نام خدا، سلام افسانهها ها اغلب داستان های غیر واقعی هستند داستان هایی با قهرمانانی که گاهی کارهای خارق ای انجام می دهند با این حال داستان ها سینه به سینه روایت شدند تا درس و پند و اندرزی را برای شنوندگان یا خانندگان به ودیعه بگذارند میخواهیم یکی از افسانه های کشورهای عربی را برایتان جان روایت کنیم به نام حاتم افسانه ای که از کتاب افسانه های مشرق زمین نوشته محمد عبادزاده کرمانی برگرفته شده اگر همچنان ما را با برنامه افسون افسانه همراهی میکنید شما را به شنیدن افسانه حاتم دعوت میکنیم یکی از کشورهای عربی پیرمردی مردی زندگی میکرد به نام حاتم حاتم مرد متمول و ثروتمندی بود و به حسن خلق و حسن رفتار شهرت داشت همه جا وزد حال حاتم بود و همه مردم شهر از اون به نیکی یاد میکردن هش نه نو... ده چرا پیمونه ها رو میشوری آسیه برای اینکه بدونم چند پیمونه برنج داخل کیسه میری هاتم آسیه جان مگه خداوند نعمتهایی رو که به منو تو داده میشوره منظورت چیه منظورم اینه که ما باید از رحمت های بی پایان خدا درس بگیریم باید یاد بگیریم که ما هم بی داشت و بی و بی اندازه به دیگران کمک کنیم خدا خداست و من و تو بنده خداهاتم هیچ فکر کردی اگه همه ی خودمون خودمونو به این اون بدیم و خودمون بی آزوقه بمونیم چی میشه؟ ای آسیه جان آسیه جان من و تو سال هاست که داریم با هم زندگی میکنیم سال هاست که خدا من به سفره من برکت و نعمت بده و من و تو هم به مستمندان و نیازمندان کمک میکنیم تو این همه سال یه هم شده که ما تو مشکل تأمین آزوقه داشته باشیم یا خدایی نکرده سفرمون بیرزق و برکت بونده باشه؟ خب نه. خب دیگه. پس نگران چی هستی؟ برای بخشیدن به دیگران دستاتو باز کن. بزار به همون اندازم به خونه و زندگی و سفرت برکت و رحمت سرازیر بشه هر دلی رو که ما شاد کنیم مثل سکهایه که در غلک زندگیمون میندازیم این ثروت هم خودمونو شاد میکنه هم خدا رو آیآیآی امان از دست تو حاتم اینقدر حرف زدی که یادم رفت پیمونه برنج تو این کیسه ریختم <تصف> مهم نیست آسیه همین مقدار برنج برای اسماعیل و زنش کافیه من میرم یکیسه یک دیگه میارم تا برای ابو فازل هم کیسه برنج بریزی ابو فازل همین دیروز بود که برای ابو فازل یه خرمن آرد بردی یادت رفته؟ تو به اون دو پیال آرد میگی یه خرمن؟ یادم نرفت آسیه من دیروز یه کم آرد برای ابو فازل بردم اما زن ابو فاضل با اون آرد نون پخته. شکم اون همه آیله رو که نمیشه با نون خالی سیر کرد. ای ابو مرد آبروداریه. ده دوازه سر آیله داره. عروس و داماد و نوه داره. بنده خدا چند ماهی که مریض شده و از کار افتاده اگه بهش کمک کنیم راه دوری نمیره. باشه من که هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی و کار خودتو میکنی پس برو از تو انبار کیسه بیار تا برای ابو فازل برنج بریم خدا خیلی از پیسه های برنجو به اسمایل و ابو فاضل داد بعد هم رفت سراغ مستمندان دیگه و تا جایی که ممکن بود به اونا کمک کرد آخر شبم به منزل یکی از احالی محل رفت تا برای آشتی دو برادر پدر میانی کنه سخاوت و بخشندگی و انجام کارهای نیک عادت همیشگی هاتم بود اما این رفتار برای پادشاه اون سرزمین خیلی هم خوشایند نبود چون نزدیکان پادشاه مدام پیش پادشاه می رفتن و از حاتم بدگویی می و به نوعی حاتم و دشمن پادشاه معرفی کردند چی شده اصحاق؟ نگاهت پر از حرف و لپات ممهور به مهر سکوت سکوتت؟ دلیل داره؟ سکوتم بیدلیل نیست سربرم. برم اما میترسم حرفی بزنم و دور از جان شما شعله به جان آرامش و آسایشتون بیفته به نظر تو چه حرفی میتونه آرامش و آسایش منو به هم بزنه؟ هر حرفی که بوی توته و خیانت میده سر برم <تصفح> هر حرفی که بوی فتنه و فریب بده یعنی میخوایی بگی در سرزمین من کسی هست که به من خیانت کنه یا علیه من فتنه اندوزی کنه دور از جان شما مردم این زمانه مار خوردن و افی شدند هر روز نقاب تازهی به صورت میزنند و با رنگ و لعاب کارهای نیک و عوام فریبانه به قبله عالم خیانت میکنند چی داری میگی ها؟ خواب نما شدی نه سرورم نه خدا منو نبخش اگه خدایی نکرده بخوام روح سرورم و آزرد خاطر کنم و خیالشو مکدر این جلز و ولزی که به جونم افتاده از ترس شما سرورم ترس برای چی برای اینکه بوی خیانت به مشامم میرسه خیانت از طرف چه کسی یا کسانی از طرف از طرف یکی از اهالی همین سرزمین پیرمردی به نام حاتم حاتم؟ نکنه نکنه منظورت همون پیر مردیه که همه اونو به خوشخلقی و خوشعهدی و سخاوتمندی میشناسن؟ دقیقا منظورم همون پیر مرده خب چنین مردی چرا باید به من خیانت کنه؟ سربرم استدعا می کنم کمی واقع بین باشید. باور کنید این دست خوش خدمتی ها به خلق خدا محض رضای خدا نیست. مطمئن یه ای پشتش پنونید. چه توتعی اسحاق شاید اون پیر مرد دلش بخواد آتش به مال و اموالش بزنه و از این راه دل خلق خدا رو به دست بیاره. با این کار چه گزندی به من میرسه؟ جسارت می کنم اما از شما بعیده که اینقدر ساده و سطحی رفتار حاتم رو تفسیر کنید بگو ببینم تفسیر تو از رفتار اون پیره مرد چیه؟ خب من خیلی وقتها با اهالی دربار درباری رفتار حاتم صحبت کردم سربرم. برم همه پیدا کردیم که این پیرمرد مرد با این خوشخدمتی هاش قصد داره که محبوبیتشو در دلها زیاد کنه و به این ترتیب جای شما رو در دل مردم این سرزمین بگیره حرف ها میزنی حساب یاوه یاوه نیست سرورم عین حقیقته من از این دست آدم رو خوب می‌شناسم. آهسته آهسته قدم برمیدارن و خودشونو تو دلها جا میدن و در طرفت و این حکومت میکنن بعد هم در چشم هم زدنی میبینن که جماعت زیادی پشت سرشون در حرکتن و ازشون حمایت میکنن خب از من چه انتظاری داری؟ انتظار دارم خیلی زود فکری به حال این پیر مرد خویز بکنید چه فکری؟ نمیدونم سر برم ولی به نظرم اگه میتونید اونو از سر راه بردارید از عقل و خرد تو در عجبم اصحاب به نظرت من به عنوان پادشاه این سرزمین میتونم چنین مرد پرنفوذی رو بکشم اون وقت مردم این شهر درباره من چه فکری میکنن؟ آب، حق با شما سربرم باید فکر دیگه ای به حال حاتم بکنیم تو که خودتو عقل کل میدونی بگو ببینم چه فکری باید برای هاتم بکنیم به نظرم بهترین کاری اینه که حاتمو به سرزمین دوری تبیید کنید سر به جایی که از چشمایی زیادی پنهان باشه و مردم دیگه نتونن اونو ببینن و از نیکیهای عبان فریبانه اون من بشن ام. باشه اگه فکر میکنین با این کار میتونیم حاتمو از سر راه برداریم انجامش بده اه. به من اعتماد کنید سر من فردا حاتم و تبعید میکنم و حکومت و سلطنت شما را از شر اون مرد خبیث در امان نگه میدارم پادشاه دستور تبعید هاتم و صادر کرد. اما چند نفر از درباریا ها این خبرو شنیدن و خیلی زود پیش هاتم رفتن و به اون گفتند که هر چه زودتر اون شهر را ترک کنه. هاتم شهر رو ترک کرد و راهی روستایی درافت داده شد. پادشاه برای پیدا کردن هاتم جایزه بزرگی در نظر گرفت. قرار شد به هر کسی که خاتم رو پیدا کنه 500 سکه ی طلا جایزه بده حالا خیلیا برای به دست آوردن سکه های طلا به دنبال پیدا کردن خاتم بودن این دیگه اسمش زندگی نیست اسمش بدبختیه اسمش فلاکته به خدای احد واحد دلم میخواد همین الان عجلم برسه و از این دنیای لعنتی خلاص بشم دلم به چی دنیا خوش باشه؟ به پول و پله تو؟ به خون و زندگی تو؟ به مال و سروت تو؟ یا به اسم و رسمه؟ چقدر بور میزنی؟ صفیه سرم رفت؟ بله دیگه بایدم سرت دره بایدم گوشی برای شنیدن درد دلای من نداشته باشی بایدم خوشت نیاد برات درد دل کنم و از نداشتن و نداریات ابراهیم مگم ابروهی. میشه بگی الان مشکل شما چیه؟ مشکلم؟ مشکلم تویی مشکل هم این وز زندگیه که پیش در همسایه برام آب رو نزاشته خدای نکرده مگه ما مال هرون خوردیم که آب رو مگه حقی و ناحق کردیم که پیش در همسایه سرمون پایین باشه امان از دست تو ابراهیم امان از دست تو کاش یه جو عق تو سرت بود تا بتونی ببینی من تو این خونه چی میکشم نه چیزی برای خوردن داریم نه لباس ای برای پوشیدن نه یه مرکب برای رفتن به دشت و صحرا. همه یه لباسامو فاصله داره من روم نمی تا خونه پدرم برم و حالی ازشون بپرسم میگه چی کار کنم من؟ من چی کار برد می که نکردم صفیه؟ از صبح تا شب روی زمین های اون کار میکنم تا شندرغاز در بیارم بتونیم شکم خودمون رو سیر کنیم سی عجب شکم سیری. تو به یه اون که شب بشم شب سخت میزنی میگی شکم سیری؟ به خدا من یکی شرم دارم به کسی بگم سفرم چه حال و روزی داره ناشکری نکن صفیه خدا قهرش میگیره شکر سپاس کدوم نعمتو رو به جا بیارم؟ تو ملک و تو کیسای تلا نقرتو بابت کدوم باید خدا رو شد کنم؟ امان از تو صفیه امان بله دیگه وقتی دو کلام پیشت دردد کنم همینجوری گور میگیری یا و و عوض میتوری و عوض نمی کنم میگم چیکار بعد میکردم که نکردم من چیکار کنم دونم. من نمیدونم من دونم. مثلا تو مرد این خونه ای این تویی که باید به فکر یه راه و چاه برای این خونه و زندگی باشی به خدای اهد واحد روزی نیست که به تو خودم و این زندگی فکر نکنم اما به هر دری که زدم بسته بود لا اقل یه بار تو یه را نشون من بده من بتونم خودم و خودتو از این نجات بدم بگو ببینم مگه پادشاه برای پیدا کردن هاتم 500 تا سکه جایزه نزاشته خب آره. به من و تو چه ربطی داره؟ یعنی چی به من و تو چه ربطی داره؟ خب, خب. من و تو آستین بالا بزنیم و کوه و دشت این مملکتو بگردیم تا رو پیدا کنیم و تحویل پادشاه بدیم و 500 تا سکه طلا جایزه بگیریم. چی؟ تو میدونی با اون 500 تا سکه طلا از کجا به کجا میرسیم؟ نه برخدا بر خدا. این چرفی صفیه. من چطور دلم میاد حاتم و تحویل پادشاه بدم؟ یه جوری حرف میزنی انگار میدونی حاتم کجاست. نه. من نمیدونم کجاست. ولی اگه میدونستم هم نشونیشو به پادشاه و مامورای پادشاه نمیدادم. اون پیرمرد کم به ما تو خدمت کرد؟ کم تو سفره ما برکت گذاشت؟ کم دست ما رو گرفت کمکمون کرد؟ انقدر مرام داشت که یه بارم خودش رو به ما نشون نداد به خدا اگه خود حاتم بدونه برای تحویل دادنش به پادشاه زندگیمون از این رو به اون رو میشه خودش با پای خودش میره قصد پادشاه و خودشو معرفی میکنه و سکت های طلا رو به ما میده بله میدونم ببین صفیه من حاتم رو یه بارم حتی ندیدم اما اونو خیلی خوب میشناسم شک ندارم که برای کمک به مردم هر کاری میکنه به همین خاطرم اگه بدبختر از اینی بشم که الان هستم به هیچ عنوان حاضر نیستم حاتم رو پیدا کنم به پادشا تعدیل بدم بس که نادونی مرد نادون پیشنهاد صفیه رو نپذیرفت در عوض حاتم که در همسایگی خونه ابراهیم و صفیه ساکن شده بود همه ی ابراهیم و صفیه رو شنید و به همین خاطر تصمیم گرفت هر طور شده به اونا کمک کنه به همین دلیلم خیلی زود به خونه ابراهیم رفت خدایا کمکم کن تا شرمنده ی ابراهیم و زنش یه yeah. منم درو باز کن ah. سلام پسرم ah. تو کی هستی علیک که سلام من من حاتمم خدوم حاتم مگه تو این سرزمین چند تا حاتم زندگی میکنه پسرم؟ هاتم یعنی واقعا تو حاتمی؟ بله من حاتمم یعنی اونی که بارها و بارها به من زنم کمک کرد و تو سفره ما برکت گذاشت توی؟ من کاری نکردم پسرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ که نمیدونیم همراه پادشاه دنبال تن آتم میدونم برای همینم اومدم اینجا یعنی چی؟ یعنی اومدی با پای خودت بیفتی دسته ممراه پادشاه بسرم من به خودم فکر نمی کنم منظورت چیه؟ من حرفای تو زنتو شنیدم شنیدم که زنت مدام از نداشتن و اون که دستتون خالی گله و شکایت میکن زن دیگه کاریش نمیشه در آره آره اما بیرا هم نمیگفت زنم میخواد زندگی کنه میخواد لباس خوب بپوشه غذای خوب بخوره بله ولی توقعش بیجاست جناب آدم من دستم تنگه به هر دریم که میزنم بسته است نه ملک و املاکی دارم که کشاورزی کنم نه هنری که برم یه گوشه یه گوشه بشینم کسب و کاری را بندازم ازش پول در بیارم میدونم پسرم میدونم خیلی ها هستن که همین حال روز دارم برای همینم اومدم تا بهت یه پیشنهاد بدم چه پیشنهادی؟ به نظرم که باید به حرف زنت گوش بدی کدوم حرفش؟ اون حرف که گفت بنو پیدا کنین به مامورای پادشاه تعمیل بدین. <تصح> ای بابا نشنیده بگیریم جناب هاتم. سفیه زن من یه چیزی گفت شما چرا به دل گرفتین؟ نه نه پسر من به دل نگرفتم. اومدم بگم به حرف زنت گوش کن. آقا منظور چیه؟ یعنی یعنی تو رو به مامورای پادشاه تحویل بدم؟ بله. برا چی؟ برای اینکه من به اندازه کافی از خدا عمر گرفتم پیر شدم و آفتاب لب بومم همین روزاست که عجلم برسه و جونم رو بگیره و از این دنیا برم خدا نکنه این چه حقیقت پسرم، دلم میخواد تو این آخر عمری برای تو زنت یک کاری بکنم برای همینم ازت میخوام به قصر پادشاه بری به مامورای پادشاه بگی که حاتم رو پیدا کردی بعدم منو تحویل بدی و 500 سکه تلا رو جایزه بگیری این چه حرفیه جنبه آتن. تو این همه به منو زنم و اهالی این شهر کمک کردی محبت کردی این همه سفرهامون رو پر کردی من چطور میتونم تو رو تحویل بدم جایزه بگیرم من خودم با رضایت اینا رو ازت خواستم ابراهیم دری نکن دلم نمیخواد یکی از راه برسه منو اینجا ببینه و منو به مامورای من پادشاه تحویل بده ولی من نمیتونم این کار بکنم تو مرد مهربونی هستی و تو تونستی به اهالی این شهر خدمت کردی من نمیتونم به قیمت ثروتمند شدن خودم تو رو تو دردسر سر بندازم آقل باش ابرانی تعرف و بذار کنار من از دست پادشاه بیرست آمدم خونم هم دیوار به دیوار خونه خودته الانم دارم میرم خونه تو هم خوب فکراتو بکن برای نجات زندگیت یه تصمیمیت درست بگیر از بابت منم خیالت راحت باشه من از دل و جون راضیم که به پادشاه تحویلم بدی عزتت زیاد دوستان، ابراهیم پیشنهاد حاتم رو نپذیرفت و حاضر نشد حاتم به پادشاه و معمورانش تحویل بده اما درست، وقتی که ابراهیم و حاتم با هم مشغول حرف زدن بودن، سه مرد به نامهای رحمت، حبیب و رحمان هاتم دیدن و اونا شناختند برای همینم هر کدومشون مدعی شدند که اولین کسی بودند که حاتم دیدند. دیدن مدتی بعد هم اون سه نفر به خونه حاتم رفتند و حاتم به قصر پادشاه بردن ابراهیمم وقتی دید جون حاتم در خطره همراه صفیه به دنبال اونها به قصر پادشاه رفت بسیار خوب می بینم که به خاطر گرفتن جایزه‌ای که برای پیدا کردن اتم تعیین کردیم همگی دست به کار شدین و اتمو پیدا کردین و به اینجا همگی نه سرورم، من اولین کسی بودم که اتمو دیدم و تصمیم گرفتم اونو خدمت شما بیارم تو اسم چیه من رحمتم صار به حرفش گوش ندید صار اون داره دروغ میگه این من بودم که اولین بار اتمو دیدم و به طرفش رفتم و دستشو بستم و اونو به خودم آوردم این قصر. رحمت و حبیبم با عجل دنبال من اومدن تا ادعا کنن که اونا هاتم رو پیدا کردن <تصفيق> تو اسمت ام. چیه؟ من رحمانم سرورم باور کنین من هاتم رو پیدا کردم و برای گرفتانش جونمو رو به خطر انداختیم امان از دست شما ها چیه؟ چنه اینجوری به دوستات نگاه می کنی تو تو؟ با تو ب... برای... نکنه تو هم مدعی هستین که تو هاتم رو پیدا کردن امان از ریاض سرورم امان رحمان و رحمت دارن به شما دروغ میگن همه ی مردم این سرزمین میدونن که من در شجاعت و درایت رقیبی ندارم <h> یکی نیست بگه این دو نفر که نمیتونن راهو از چا تشکیس بدن چطور میتونن به فکر بیفتن که مردی مثل حاتمو پیدا کنن با خودشون به دربار بیارن یعنی میخوایی بگی که تو حاتمو پیدا کردی؟ بله سرورم چرا دروغ میگی حبیب میدونی دروغ گفتن در محضر پادشاه چه جور می‌داره جناب پادشاه چیه رحمان میخوای بگی حبیب دروغ میگه ولی تو داری راستشو میگی حبیب, حبیب تو می... اتمو پیدا کردی ها لگی چه پیدا کردم رحمت درست همون موقعی که تو و حبیب داشین استراحت می‌کردین و خواب پیدا کردن آتم می دیدین من جونمو کف دستم گذاشتم و خونه به خونه اون روستا رو گشتم و هاتمو ها پیداش کردم تو پیدا کردی تو پیدا کردی تو اصلا کجا بودی راست حدی داره! چطور جرعت میکنی؟ در حضور من با هم بحث کنی؟ سربرم این دو نفر همیشه با هم توانی میکنن تا حق منو بگیرن! به شما پنا میبرم منو نجات بدین و نذارین این هم حق منو بخورم! عجب رویی داری تو رحمت! عجب کم داری! رحمتی سبیب رو رو شما تا بس کنی! ساکت! هیچ کس! حق حرف زدن نداره چاش. ببینم مرد تو حاتمی درسته؟ بله جناب پادشاه این سه مرد مدعیان که تو رو پیدا کردن و به اینجا آوردن ازت میخوام خودت حقیقت و برای همه آشکار کنی و بگی که اولین بار چه کسی تو رو پیدا کرد من همینقدر میتونم بگم که هیچ کدوم از این نفر منو پیدا نکرد خب بقیهش هم بگو وقت اذان پادشاه اگه اجازه بدین میرم نمازم و میخونم و بعد از نماز به شما میگم که چه کسی منو پیدا کرد و به اینجا پادشاه به حاتم اجازه داد نماز بخونه. حاتم با تواضع وضو گرفت و نماز خوند. در تمام اون لحظات ابراهیم و زنش صفیه به حاتم خیره شده بودند. صفیه از اینکه پیشنهاد داده بود حاتم رو به پادشاه تحویل بدن خجالت کشید. ابراهیمم در این فکر بود که چطور میتونه حاتم رو از دربار پادشاه بیرون ببره مدتی بعد حاتم سجده رو جمع کرد و به دیدن پادشاه رفت من در خدمت شما هستم جناب پادشاه ببینم حاتم من برای پیدا کردن تو پونسد سکه تلا جایزه تعیین کرده بودم و این سه مرد مدعی که تو رو پیدا کردن هر کدوم طالب پونسد سکن و تو مدعی هستی که اینها رو نمی شناسی و هیچ کدوم از این سه نفر تو رو پیدا نکردن بسیار گفت پس خودت حقیقت رو بگو به واقع کدوم یک از این سه نفر تو رو پیدا کردن؟ بگو بگو بگو من، بگو بگو ارز کردم که جناب بادشا هیچ کدوم از این سه نفر منو پیدا نکردن یعنی میخوایی بگی تو با پای خودت به دربار اومدی؟ نه اون زن و مرد منو پیدا کردن به اینجا جا اونایی که اون گوش نشستن و سکوت کردن آه. اه. اه. اه. اه. آه چرا یاوه میگه هاتم اون دیگه چنگ که فکر میکنی تو رو پیدا کردم آتم دیوونه شده عقلش از دست داده به ده نظر منم هاتم فراموشی گرفته و هیچیو به یاد نمیاد. این من بودم آه. که تو رو پیدا کردم وقتی هم به تو گفتم اسمم رحمته گفتین رحمت خدا شامله حالت بشه یادت نیست؟ من نه عقلم از دست دادم نه حوچ عواصمو شما سه نفر قصد جناب پادشاه رو دارین ولی حقیقت اینه که ابراهیم و زنش بودن که منو پیدا کردن و به این دربار آوردن ببینم ها،, ها تو مطمئنی که ابراهیم و زنش تو رو پیدا کردن من شک ندارم جناب پادشاه بسیار خوب آهای آمین. ابراهیم آمین. تو و بیاین اینجا ببینم. چشم چاش. در خدمتیم این سربرم حاتم مدعی شده که تو و زنت اونو پیدا کردیم و به این دربار آوردیم آم نه آ... نه نر... نر... سربرم جناب حاتم مرد مهربون و دست به خیریه راستگوز صادقه اما این منوزن هم نبودیم که اونو پیدا کردیم چی داری میگی ابراهیم چرا مون کاری میشی که انجامش دادی؟ نه جناب هاتم خدا ما رو نبخشه اگه بخوایم مرد بزرگی مثل تو رو به اینجا بیاریم تو مجازات بشی تو همیشه به من و ابراهیم و خیلیای دیگه محبت داشتی همیشه دستمونو گرفتی منو ببخش که یه لحظه شیطون به جونم افتاد و به ابراهیم گفتم تو رو تحویل پادشاه بدی دیدی جناب پادشاه با... دیدید اینا میخواستن هاتم رو تحویل بدن اما جرأتش رو نداشتن این من بودم که هاتم رو دستش تقدیمش کردم کن حبیب یک کلمه دیگه حرف بزنی دستور میدم تو رو به سیاه چال ببرم <تصفيق> من دروغ نمیگم سر برم ابراهیم و زنش منو پیدا کردن این جایز حق اوناست لطفاً پونس از سکه طلا رو به اونا بدین و اجازه بدین به روستاشون برگرد چی چی جایزه رو به اونا بده داری یک کیسه خلیفه میبخشه پیر من؟ این مرد دیوانه سر پادشاه با درایتی مثل شما نباید حرفای این مرد دیوانه رو باور کنه این سه نفر تبانی کردن تا سکهارو مال خودشون کنن مرس کنید ببینم ابراهیم اگه تو حاتم رو پیدا نکردی پس چی شد که سر از این دربار در آوردیم؟ <تصفح> سرورم من و زنم وضع مالی خوبی نداریم. درامدی نداریم بتونیم به راحتی زندگی کنیم. راستش زنم از من خاصا طهما پیدا کنیم اونو به شما تحویل بدیم به جاش 500 سکه طلا جایزه بگیریم. آه. بله ولی بله جناب پادشاه ما این رو گرفتیم ولی نمیدونستیم هاتام کجاست. تا اینکه ساعتی بعد حاتم به دیدن ابراهیم اومد و گفت در همسایگی ما زندگی میکنه و حرفای ما رو شنیده آه. حاتم از ابراهیم خواست که اونو به شما تحویل بدیم گفت با این کار ابراهیم میتونه سکه های تلارو صاحب بشه و به زندگیمون سر و سامون بده آه. بچه شد؟ من قبول نکردم سرورم آه. یعنی دلم حاتم رو به شما تحویل بدم. همه مردم این شهر حاتم و به بخشندگی و مهربونی میشناسن. من نمیتونستم به خاطر این 500 سکه اونو به شما تحویل بدم. اب ببینم حاتم، یعنی تو حاضری در ازای زندگیت به این زن و مرد 500 سکه یه طلا جایزه بدم؟ جناب پادشاه، من پیرمرد هستم. ولی ابراهیم و زنش جوانن و هزار تا وارثو دارن. اونا باید اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن و از زندگی لذت ببرن. من حاضرم در اختیار شما باشم تا هر جور صلاح میدونین با من برخورد کنین در سایه اون شما 500 سکه طلا رو به این زن شوهر بدین آجه بیا هاتم بیا بیا کنار من بنش تو مرد با تجربه و با درایتی هستی منظورتون چیه سرورم من اعتراف میکنم که فری به اطرافیانم رو خوردم نباید با چشمان بسته به حرفایی که میشنیدم اعتماد میکردم باید خودم میرفتم و از نزدیک با حاتم می شدم. خدا رو شکر سرورم خدا رو شکر شما هم به صداقت و درستی حاتم آگاهی پیدا کردیم ابراهیم همین الان دستور میدم خونسد سکه طلا تو بدم و به روستای خودت برگردی و بازنت زندگی تازه ای رو شروع کنم. به سر حاتم اه. چی میاد سر برم؟ شما که نمیخوایم بالای سر اون بیاری خیر. از امروز به بعد حاتم به عنوان مشاور من کنار من در همین دربار زندگی میکنه. من میتونم از تجربیات حاتم بهره ببرم و بتونم اوضاع مملکتو بهتر از پیش سر و سامون بدم. ولی سر برم هیچ حواستون ما سه نفر نیست که دو ساعت داریم اینجا جلسه و ولز میکنیم. اتفاقاً حواسم به شما سه نفر هم هست <تصفيق> بازم خدا رو شوش. ولی سالبرم اگر حواستون به ما است که باید لاغه سکه های طلا رو بین ما هم تقسیم می کرد. چرا سکه ها رو تقسیم کنن رحمت؟ من حاتم رو پیدا کلم چون خود خیلی اوی می کنم به خود خیلی رو خودت رحمان بس کنید بس کنید همین الان دستور میدم شما سه نفر رو به زندن زندان بندازن <تصفيق> <جدا. تصفيق> برای اینکه دفعه بعد به خودتون اجازه ندید در مقابل پادشاه مملکت دروغ بگین و از دروغتون کنید کنی. آیا نگیاب؟ زود باشید تا نفر رو به بار جدایی داری. نمی‌خوام این سر برا. ماله برا. ماله برا. ماله برا. ماله برا. ماله برا. ماله بله دوستان، این هم از افثانه هاتم که حکایتی از خیر و خوبی و بخشندگی بود و به ما آموخت که نتیجه خوبی جز عاقبت به خیری نیست. از افثانه هاتم که افسانه عربی و از کتاب افسانه‌های مشرق زمین نوشته محمد عبادزاده کرمانی برگرفته شده بود. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت برده باشین. افسون افسانه این داستان حاتم تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی بازیگران به ترتیب اجرا محروخ افسلی معصومه عزیز محمدی علی میلانی حمید یزدانی، علی دریایی، نوشین حسنزاده، امیر فرحانیا، محمد معجزاده، امین بختیاری مجتبی مجتبا تبا کارگردان ایوب آقاخانی، نازنین حسن پیو. صداوردار فرزاد شریفی تهیه کننده زهرا عبدالله صادقی افسانه ها رنگی از زندگی اند افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا افزانه دیگر به جود.